بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بی نهایت باره سوگن به با کوه تو با کتاب نوشته شده درورک گشاده و سوگن با بیت المعمون و با سقف برافراشته شده و با بحر جوبشان سوگند به همه اینها که بگمان عذاب پروردگار تو واقع شده نیست و هیچ چیزی آن را دفع کردنی نیست روزی که آسمان با معوجه های حیبتناک موج زند و کوه‌ها بر افتار سغی روان گردند. پس وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق آنهایی که در سخنان هرزه مشغول هستند در آن روز که به آتش دوزخ به زور کشانیده می شود گفته می شود این از تومان آتشی که آن را دروغ می پنداشتی. آیا این واقعا جادویی بود یا شما دیده بینا نداشتید به دوزخ درایید خواهشی که با یورزید یا بیستگری کنید هر دو حالت به شما برابر است واقعا طبق عملی که انجام داده اید جزا داده می شوید و واقعا پرهیزگاران در باغهای بهشت و در خوشی و نعمتها به سر میبرند از آنچه چه پرواردگارشان و ایشان داده است شادمانند و نیز از اینکه که آنها را از عذاب دوزخ نجات داده است و ایشان گفته می ای شود به گوارایی بخورید و بنوشید خاطر اعمالی که در دنیا انجام می دادید و در این حالت ایشان بر تختهای زده می باشند که به سطح های منظمی تهیه شده است و ایشان را با حوران بزرگ چشم هم می و کسانی که ایمان آوردند و اولادشان از آنها با ایمان پیروی کردند اولادشان را با ایشان پیوست می سازید و در این حال از مزد عملشان هم چیزی را کم نمی کنید آری هرکس کس در گروی کردار خود است و, و ایشان می و گوشت از آنچه خواسته باشند پیاپای ارزانی می کنید. در آنجا جام‌های شرابی که بهودگی و گناه را به همراه ندارد دست به دست می کنند نوجوانانی برای خدمتگاری گشت و گذار می کنند که گویی مروارید اندر حلاف پنهان شده در این حال بعضیشان روی با بعضی دیگری کرده از هم میپرسند نیگوین می پیش از این در میان اهل بیت خود در حالت تس سر میبودی ولی خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب کشنده نجات داد که از سابق با او یعنی خدا نیایش بی کردی. بیگمان که او نیکوکار و مهربان است پس تو ای محمد پندی زیرا تو به فضل پروردگارت نکاهین و نه هم دیوانه می باشی یا می گویند او شاعر است و برای او روز روزگار را انتظار می کشی بگو انتظار می‌کشید. من نیز با شما انتظار می کشم. آیا خیردشان آنها را به این کار برمی یا ایشان قومی تویانگری هست آیا می گویند او قرآن را از خود بربستد نه خیر بلکه ایشان ایمان نمی اگر واکن راست می گویند که این قرآن را خود پیغمبر افتحا کرده است و سخن همانند آن بیاورند. آیا ایشان خود و خود بدون هیچ چیز آفریده شده اند یا خودشان آفریدگار خیشند؟ آیا آسمان و زمین را ایشان آفریده اند؟ نه خیر بلکه ایشان یقین ندارند آیا خزانه های غیبی پروردگارت نزد ایشان است؟ آیا ایشان به همه امور تسلط دارند یا زینه دارند که با آن با آسمانها بالا شده و اسرار آن را پیشنوند؟ پس باید این شنونده ایشان به هیلی آشکاری یا برای خدا دخترانی است و برای شما پسران؟ آیا از ایشان پاداشی میخواهی که آنها از این تاوان می میشوند؟ یا اسرار غیبی نزد ایشان است که ایشان از روی آن می نویسند یا دسیسهای را در نظر دارند آری کافران هم ایشانند که به دام خود گیر می آیند؟ یا برای ایشان معبودی جز خدا است منظه است خدا از آنچه به او شریک می آورند اگر پارچهی از آسمان را ببینند که می افتد می گویند ابریست متراکم پس ایشان را تنها بگذار تا آن روز خود را ببینند که در آن بیهوش ساخته می شود روزی که دستیسه ایشان از ایشان چیزی را دفع نمی کند و به ایشان کمک صورت می دید برای ستمگاران عذاب است بغیر از این عذاب که در آخرت برایشان در نظر گرفته شده مگر بیشتر ایشان نمی داند به فرمان پروردگارت انتظار بکش. زیرا بیگمان پیش نظر ما قرار داری و پروردگارت را هنگامی که می ایستی به پاکی ستایش کن و نیز در پاره از شب او را ستایش کن و نیز در هنگام غروب ستاگان